هذا سهل روزي خبرنا جارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق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 بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان بالاخص جناب آقای دکتر کوردی مدیر عامل جناب چاکرزی عضو محترم هیئت مدیره و معاونت فرهنگی و اجتماعی و گردشگری و عزیزان و همکاران خودم در عرصه اطلاع و اخبار امروز دوره هم جمع شدیم که یه روز ویژه رو دوره هم باشیم روز خبرنگار خب خبرنگار ها وظیفه بسیار سنگینی دارن اطلاع رسانی شفاف و به موقع تقریبا به دلیل اینی که صبح زودم مزاهم شما شدیم که برنامه های رو امروز داشتیم و حقیقتا علی رغم برنامه‌های فشارده‌ای که جان دکتر داشتن و سفری که در پیش دارن ولی گفتن این برنامه رو حتما توی برنامه ها قرار بدین به دلیل نگاه ویژه و خاص به بحث اطلاع رسانی و اخبار من از تشریفات میگذرم و میریم به برنامه امروزمون برسیم خدمت هاجاغای چاکرزهی هستیم چند دقیقه ای رو که بعد با ادامه برنامه خدمتون خواهی نه ما فقط صبح خیر میکنیم و در خدمتشون هستم واقعا پیشنهاد خوبی های دکتر. را تمام طول سال خبرنگاران در خدمت مردم استان امروز را در اختیار ما است. بسیار عالی است. جماعت من. از <سؤال> اندی به داده. آره خطریه سلام مجادر و خدا مون سروش ارتقا دیر. تشکر از جناب 71 راهوردی مدیر عامل وانتوا حضرت تجاری ارتقا بانداو قصدارو که کوتاه صحبت کنند با توجیه مسافرتی هست تو خودمو میسه که مثل جناب شما مقدار کسالت داشتیم ولی وظیفه داشتیم که حرمت گو داشتیم خدمت برسیم. شما وظیفه بود و دومن یه برنامه در کناراکم داشتیم آقای حاج آقا یوسفی گفتن بالاخره اجازه میفرید خدمت این امضا باشه که بزر تو امزا زده گفتم براخره رو باید بریم به هر تقدیر مجد. ما کناروک از چابهار جدا نمیدونیم به سرایز یک بود بودن یک شهر بودن جدا شدن آن هم شهر همجواری هستیم و متأثیر از تمام تحولات که در چابهار ایجاد میشه ما هم هستیم چه بخوایم چه نخوایم. به هر تقدیر ارتدار باید سال روز شهادت استاد سردار سارمی، سردار قلم و ما همه این دوستانی که اینجا حضور داریم بالاخره باید مقاید باشیم به این که در اطلاع به کارهایی که داریم صداقت، امانت داری در لوه کارمون باشه مخصوصا بچه که در سرد قلم هستن امروز گسترده شده مثلا کارهای رسانهی قبل ما خبر محدود بودیم کل شهرستان چابهار سال شد که بنده البته ناخواسته ما یه فرنگی بودیم گفت کی قلم می‌زنه قلم زدند هم برات نبودیم ما رو آوردن در عرصه‌ی قلم یه 10 15 سالی چابهار رو اونا رو که تو همون با هم داشتیم فرصت های بود هدف اینه که ما که در کار رسانه‌ای می‌کنیم در واقع وابسته به هیچ جریان فکری و گروهی نباشیم متاثر از جریانات ارتجاعی شهرستان نباشیم در واقع ما باید در کار در واقع کمک حال مسئولین باشیم خب بعضی ما می‌بینیم که تازه به جریان فکری میشم با هدف و غرض و مراد اصلا ما میگیم ما قسم خوردیم به نون کار مو استرون مشخص این رسالت من من نوعی در کار خبری اینه که در واقع ما کمک بکنیم در واقع با اطلاع رسانی های به موقع و بجا نه اسیر مسئولام و از مخ ما نه ما به اسیر باشیم به تفکرات رو ما تاثیر بذاره تو ما تجربه کردیم اینا به عنوان تجربه چوالیت من سخن‌گوی خوبی نیستن دوستان جوان الان که هستن، خبرنگار همه آکادمیکون تحصیل کرده هستن، ما تجربه‌ای هستیم ولی این به اصطلاح چاره‌شا را داشتیم. حتی زمانی که منطقه آزاد، اگه بگیم، اول که منطقه ازاد اینجا ایجاد شد، سال هفتاد اندی دیقون، من دقیقاً از سال 74 یا 72. تکرار هر جاییه کاری انجام میشه، یه جمعیتی میاد، گسيل میشه، اون منطقه میاد، یه سری زایا و یه سری مسائل هم داره، طبیعیه در جوار اون مثلال غیر اخلاقی هم رخ می داد. من اون موقع احساساتی بودن جوان بود این دی زی دوستان میان که تو ذهنشون باشه بله بر جوونه. چون چ دیگه و عندی سال داریمه کو سالیم و روبط جنتتیش ما بچه ها خبری هستیم اینجا که نشست بازخوا ما می بینیم به شما منتقازات اینطوره برای این اتفاقات میفته هااجقا ها شرید مداراتتی ما از روزنامه خودم ذاتا اعلام میکنن اصلاح طرم، نونی اصلا در صفره اصولگره ها با احترام با سه موزه داره با اون را کار میکنه متوجه استیم که اون خود سادمان من میدونه به هر تقدید که تا سرشدیات احساسین را این خبارها را نفرست بابا این جامعه این کارا هست یعنی زایده این جمعیتی که اینجا گوسه میشه مقداری چشماتون ببندی این تبعات داره این نارسایه هست این کارهای هست ولی در نهایت دو دو حساب تو صد تا حساب اکثر خبرایون که ما می فرستادیم اونجا بایگانی میشد ما میرفتون ناله ما زحمت میکشیم حرف درست میکنیم خبر میفرستیم. شما این کارا رو نمیکنیم حالا من توصیه دارم به جوانان بالاخره ما آخر خطیم نه به کسی دینی داریم نه مدیون کسی هستیم نه ناخاسته به هریم کسی ورود کردیم جریانات زیاده تو شهر که من ممیگه چون اخر ما تمام امروز فضا مجازی باشه حقیقی باشه همه ما همه رو رسد میکنن ولی در تصمیم گیری ما نباید تا جری تو اخیرا میبینیم چه خبرایی هست من اسم نمیبرم ولی من به دوستا توصیه ای دارم اگه میخوام تو خبری باشیم استقلالی فکری داشتیم وابستگی نباشیم و خرید هم نشیم بدترین فاجعه برای اونی هست که قلم به موز باشه من قسم سخنرانی نداشتم از ابرون گفتم خیلی کوتاه مدت و تشكریم داشته باشیم از اجاق گردي و چنان چاكرده چابز، چابز، که همه دوست بازار های بومی هستن ما ابتخار میکنیم زمانی که اینجا انجامیم من از اون مردمای قدیمی هستن که زمانی که دوستان میبینیم احساس غروری به ما داشت میده نه که ما تمام قدرت خودمون برای این تخریب دوستان حالا نمیگویم نارسایی نگی کار خرابی نگی نگیم این رسالت ما از بدون رو در واسی شفاب میشین و, و دوستا سواد میکنیم و وظیفه ذاتی خودمون نباید لغزش هم داشته باشیم من بیشتر مساعده اوقات نمیشم دوستان هستن جوانان و از اون استفاده میکنم ببخشیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان به خصوص های کردی بلت من یک هفته هست مریضم و نمیتونم صحبت کنم، فقط تشکر دارم، فقط تشکر دارم از دکتر کردی، تشکر بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای یاد و خاطر شهدای خبرنگار، علال خصوص شهید سارمی رو گرامی میداریم و روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز تبریک ارز میکنم و یه تشکری ویژه هم از جنبای کردی دارم به خاطر این مراسم و ای که برای خبرنگاران در واقع تدارک دیدن ابتدا فقط من خودمو معرفی میکنم بزن همه دوستان اول خودشون معرفی کنند بعد سآلاتو میپرسیم منصور سوری کریم دادی هستم از خبرگزاری مهر به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دوستانی که در این جمع حضور دارن مخصوصا دکتر کردی عزیز آی مهندس چاکرزی و مهندس یوسفی و مهندس و سایر دوستان سه نکته بودن هیفم اومد رو نگم چون تریبون تریبون خوبیه شاید فرصت پیش نیاد بحث اول در خصوص تولید و پخش محتواست دوستان تولید محتوا maksud مفید خیلی ارزشمندن با توجه به گسترش شبکه مجازی خودم چند سالی از این کار رو دارم انجام میدم و از تمام دوستانی حضور دارن هم میخوان این کار رو انجام بدم مثلا خیلی وقتا پرست پیش میاد که به مناطق سفر میکنیم که اصلا هدفمون تولید محتوا نباشه ولی مثلا یک جاذبه خوب دیدید مثلا یک قبرستان تاریخی بود یک چاهی بود یک جاذبه خوب گردشگری بود بعد نیست در کنارش یه معتوایی تولید کنید و اونو پخش کنید بس دوم پخش معتوا هاست مهم نیست معتوا کی تولید کرده هر معتوا مفید باشه رو لطفا پخش کنید بس دوم که جدیدان داره آم میشه یه سری تعصبات که یه زمانی مثلا میگفتن بلوچ زابولی بعد میگفتن مکرانی و سرحدی الان هم جدیدان داره آم میشه چاباری و کنارکی اگر یک فعال گردشگری یا یک خبرگزاری به اشتباه یکی از جاذبه‌های کنارکو در کنارش بنویسه یا در کلیپی جای بگه که چابهار خیلی مورد انتقاد قرار میگیره زمانی بود که تمامی های کنارکو ما در کنارش می‌نویسیم چابهار و دلیلمون هم این بود که چابهار از سالای قبل به خاطر سازمان منطقه بنادر شیلات و خیلی از موارد دیگه در کل ایران شناخته شده بود ما دوست داشتیم تمامی گردشگران رو به اسم چابهار بکشونیم اونا رو پخش کنیم ببریم سرباز نیکشر، شهر کنارک و در مکان مورد نظر بهشون بگیم که آقا درک در شهرستان کنارکه و اینجنین شد که مثلا شهرستان کنارک الان اسمش داره در شبکه‌های مجازی و همچین عام میشه قبلا مثلا خیلی کم میگفتن کنارک همه میگفتن چابهار بحث سوم که مهمترین بحثه دوستان و خبرنگاران عزیز الان وقت ناامید کردن مردم نیست شرایط اقتصادی و خیلی از مسائل ایجاب میکنه که در زدن خیلی از خبرها و پخششون باید دقت کنیم یه سری خبرها هست خوبن یه سری خبرها هست خیلی بدن مثلا دیشب از رستم کریمی یه خبری دیدم خوشحال شدم که از افسایش اعتبار و که از ابسارش اعتبار و ابسارش سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین توسط سازمان منطقه آزاد در این سه سال نوشته بود که خبر خیلی خوبه مثلا اعتبار و 150 میلیارد تومن در سال 95 به 750 میلیارد تومن در سال جاری رسونده بودند که این نوید اینه که ترهای حمایتی که دکتر کردی داشتن و قدرت بیشتری دنبال بشن البته یه سری خبر ها هستم خیلی بدند مثلا که خیلی از خبرگزاری ها میتونن اینا رو خوب تلقیه کنند مثلا همین حمله تیمسا به دختر کچولوی هوا بود همه خبرگزاری اومدن از تمام ادارات ارگان انتقاد کردند. ولی هیچ کسی نیومد ننوشت که پدر مادر هوا هم مغسرند چرا یک کودک شیش ساله یا پنج ساله رو میفرستن دنبال آب در برکهی که تمسا داره چرا ها نباید بدونن تمسا در فصل تولید مثلشون خطرناکن اصلا چرا چرا خونواده ها ندونن تمسا واقعا درنده‌ترین در حیوان دنیا است ولی هیچ کسی نمیاد اینو نگو چون پارسال هم اتفاق مشابهی افتاده بود یه دختر کوچولو فوت کرده بود امسال هم این اتفاق افتاده دقیقاً در فصل تولید مثل اگر این خبرنگاری قدرتشون از ماها بیشتره اگر یک بار بیان بنویسن که پدر مادرشون رو اطلاعشنو ببرن بالاتر اولندش بچه رو نفرستن پیش تمسا دو اگر هم میفرستن حالا در فصل تولید مثل نباشه یه خبرای دیگه ای که الان در شبکهای مجازی به شدت داره منتشر میشه اونم توسط خیلی از افراد مطلع دارن منتشر میشن متأسفانه یکی همین چند روز قبلان خیلی از مردم روستای کمبل و دور اطراف نامه نوشته بودن و از مدیران سازمان آتش‌نشانی به شدت انتقاد کرده بودن که در خصوص حتی نوشته بودن چپاول زمینها با ساخت پتروشیمی و فرودگاه هیچ کسی نمیاد نویسه که آقا زمینی که برای ساخت فرودگاه استفاده میشه باعث میشه که منطقه توسعه پیدا کنه اشتغال ایجاد بشه و زمین های اطراف ارزششون هزاران برابر بشه زمین به خودی خود هیچ ارزشی نداره ولی اگه پتروشیمی و فرودگاه در کنارش ساخته بشه اون زمین دارای ارزش میشه خبر دیگه ای هم که زده بودن به اسم واگذاری قرن توسط محیط مدیره زمیناشونو. هیچ کسی نیومد نگفت دوستان هم سرمایهگذاری مسلزم اینه که زمین واگذار بشه سرمایه گذار میاد اینجا کار کنه سرمایه گذار میاد اینجا یه قطع زمین از سازمان آزاد الان با توجه به این اینکه بندر هم از تعریما معوافه یه قطع زمین بگیره اینجا سرمایه گذاری کنه خب میاد سرمایه گذاری کنه کار روز زمین مردم که نمیتونید سرمایهگذاری کنه باید زمین بگیره و اینکه الان تعداد واگذاری بیشتر شده نشانه درایت مدیره است که دارن. آه، آه، راحت تر میکنن شرایط واگذاری زمین و گزاری در چابه ها رو ولی متأسفانه کسی نه تنها این کارو نمی کنه بلکه در پخش این اخبار دارن کمت میکنن خیلی هم از دوستان نیتشون حالا شاید بدنام کردن شاید مثلا خیلی مسائل باشه شخصی باشه حالا به موردی خواستن نرسیدن یه متنای با ادبیات خیلی خوب می نویسن اعداد ارقام داخلش قرار میدن عکس میگیرن مثلا از واگذاری زمین میفرستن مردم آم نمیدونن چیزی اطلاعی هم ندارن مردم فکر میکنن آره سازمانمت غازا چابار داره مثلا زمین ها رو واگذار میکنه حال این یعنی چی خب خبرگزاری ها یکی از وزیفهشون اینه که اینا رو به مردم بگن فقط مثلا این اینکه کارمند یک خبرگزاریان به این نگاه نکنن بابت هر خبر هزار تومان میگیرن خیلی از اخبار بعدو باید رو شما بگیرید مثلا من اگر چیزی بنویسم خیلی ها میگن آقا شما مثلا از منطقه آزاد چابهار حالا تحصیلاتی دارید میگیرید که دارید حمایت میکنید ولی شما های رسمی اگه اینا رو حتی در پیج شخصی خودتون هم مطرح کنید خیلی از مردم میگن آقا این خبرگزاریه دلیلی نداشته و خیلی از دوستانم جدیدا مثلا دوربین به دست شدن مثل خود بنده دارن از محرومیت های سیسان ملوچه اصفان میگنم روسته های محروم دارن سفر میکنن راجب این محرومیت‌ها دارن میگن حالا نمیدونم این خوبه یا بده چون دریت وظایف من نیست و راجبش بررسی نکردم ولی خوبه که هر یک از ما خبرگزاریا به یکی از روستا‌های خیلی محروم میرید و خودتونم دارید رو منتشر می‌کنید خوبه که مثلا اونجا بشینید با مسئولین روستا با مثلا معتمدین جوونا بیاد بررسی کنید چطور این محرومیتو میشه رفت کرد اگه دولت می‌خواد در عرض 40 چل... بخشید مرزد میخوام آخرین مورده میگم چه خوبه که شما در روستا با این مسئولین یه نه دکتر واقعیت حقیقت شو میخوای من خودم همیشه از کارهای خوب طرفداری میکنم کارهای خوب و به شهدت منتقد شون هستم چه خوبه با اون مسئولین روستا جلسه بگیرند چه کار کنند ایجاد اشتغالی بشه؟ مثلا از معرفی جازوهای گردشگری دور اطراف روستا گرفته تا مثلا, مثلا تو روستای سیدوار دشتیاری یه خانوم داره صنایع دستی میفروشه از محل سود صنایع دستیش 50 میلیون برای ساخت این مدرسه کمک کردید. خب پس صنایع دستی در دورافتاده ترین روستاها هم سود داره. خب چه اشکال داره دو روستا خیلی دورافتاده و محروم میرید اینو بهشون یاد بدید. پیجی بزنم من خودم برای صد نپتا الان پیج صنایع دستی زدم. چه اشکال داره برای سه چهار تا نفر پیج صنایع دستی بزنید جواز گردشگریشون معرفی کنید که حداقل منفعتی داشته باشه. شما مثلا میرید مرو نمیتا رو میگید. خب اگه قرار شد رفت بشن چل سال قبل هم ببینید ادارات خیلی فکر میکنند از یه مدیر انتقاد کنین تو شبکه مجازی مدیر ترسه. در واقع اینجوری نیست مدیر وزیفش اون نوشته ولی مثلا اعتبار نیست یالا پولیز کاری رو انجام بده بچه محزت میخوام وقتونو رو گرفتم ولی نیاز بود یه رو بزنم با. از آی کرتی و همکاران که این مراسم رو ایجاد کردن و خیلی خوشحالمون کردن بنده حرف خواستی رو ندارم فقط چند روزی پیش تقریبا یه هفته پیش یه منتشر شد در فضای مجازی در آبته با راستازی آب فاضلاب در بستر رودخان دریا که از دانشگاه دریا بود ما رفتیم پی اون گزارش رو گرفتیم آقا که از کجا آمده چیه گفتن که پس آب آبشیری میکنه در دانشگاه دریا نمارده ولی تو اون رسیدگی که داشتیم میکردیم همه ادارات داشتن همدیگه رو لو میدادن که فازلا بهش راه میشه کجا راه سازی میشه اینا و متاسفانه چند تا آدرس وان دادن چند تا اداره رفتم به... یعنی رفتم خودم از نزدیک دیدم یه خواهشی دارم و شاید هم چیز نباشه من رفتم سمت پیکره مسکونی و فضلابشو دیدم یعنی واقعا اونم یعنی راهسازیش در طالون در بیابونای در در پشت یعنی ورشگاه ورنا نه پشت ورشگاه ورنا هیچ سپتیکی نیست تو بیابون داره راه میشه یعنی یه جا اومدن یه چاله ای زدن اونجا چاله پر شده و بعدم رفتن توی یه گودی بودو بعدم مثلا اونجا این میشه تو همون خود پیکره یک تقریبا یک رودخانه مارند بزرگ اونو شبیه سپتیک در بیاران یه خورده خیلی ممنون میشم. مرسی تفاس کتار. اوز بالله من الشیطان الرجیم نون والقلم هم آیسترون صدقات لاولازیم عرض سلام و ادب دارم خدمت مسئولین محترم بنده امید بلوچ هستم خبرنگار مانامه عاطف جوان و پایگاه اطلاع رسانی سیستان و بلوچستان روز خبرنگار یا اطلاع رسانی نمیدوند تو واژه فاصله هم دارند از ولی به روز روز خبرنگار هستش گرامی میداریم یاد شهید سارمی رو که در این راه جانشونو فدا کردم خبرنگاری یا اینکه کسی بگه من خبرنگارم این واقعا این حرفه رو داره یعنی افراد عادی معمولا خودشون خبرنگار معرفی نمیکنند نمی نمی ولی متاسفانه هنوز جا نیفتاده مخصوصا تو شهر ما چاوار ی شهری که مسئولینی چون آی کردی یا بزرگارانی که در مسئولیت های بالای استان هستن یا شهرستان هستن دارن زحمت میکشن برای پیشرفت این شهرمون در واقع باید به این سطح جایگاه خبرنگار و مسئولین تشخیص بدن بهشون باها بدن چون امگام که برنامه‌ای که مسئولین می‌ذارن برای پیشرفت و ترقی نیازه که مردم اون شهر هم امرا مسئولین باشن این امرایی نمیشه کل شهر رو یا کل مردم بسیج کرد در مورد تری یا نمایت حمایت بشن یه تاری رو می‌خواد حمایت کنن از تمام مردم بخوایم ولی میشه با خبرنگارانی که در سطح شهر فعال هستند اونا رو تو جلساتشون دعوت کنند و و واگذار کنند که خبرنگاران این پس اطلاع خبر نشر خبر رو داشته باشند چون خبرنگار معمولا میاد جنبه های مثبت یه خبر رو در نظر میگیره همیشه میشه جنبه های مثبت یا اینکه یه ب از مسئولی به نون پایانش هم خودش مینویسه و اطلاع رسانی ده ده ده اون متن خبری که مینویسند دوستان متن خبری که مینویسند نیاز واقعا نیاز داره به تخصص یه خبری که من هیچی نمیدونم اون خبر رو مینویسم یه متنی رو در مورد رویدادی مینویسم با کسی که خبرنگار هستش و همون متن رویداد رویدادو مینویسه صد در صد تأثیری که اون خبرنگار نوشته رو همین رویداد تأثیرش بیشتر و گیرایش و اینکه مردم متوجه قضیه بشن بحثم بحث کلی خبرنگارمون اطلاع رسانی و آگاسازی جامعه هستش و بازم یک عرفه خطرناکی هم است. چون از طرف خیلی خبرنگاران ما مورد کم لطفی قرار می گیرند و ما نبایدیم که چیزی رو تو شهر چابار احساس کنیم یعنی شهری که در حال توسعه باشه یعنی جایگاه خبرنگار رو هنوز ندونن متاسفانه حالا بعضی از مسئولین هستند که خودشونو رو فراری میدونن ولی اینا مسئولین بدونند که مسئولین، کمکاری های مسئولین خط قرمزی برای خبرنگاران نداره و تازه جذابیت هم داره که خبرایی رو کار کنند در این زمینه خبرایی که به قول برقیا شاید بشه تخریب ولی برای او اون خبر که اصلا مطمئن باشیم با صداقت بنویسیم اصلا جانبداری نمی‌کنه و خبری هم بزنه در مورد مسئولی اون نمیشه گفت تخریب و شاید یک پنجره یا بگیم یا رای برای پیشرفت باشه یعنی اون آگاهی برای مسئول خبر رو ببینه که آره باشه چشم خلاصه می دوستان میگم زیاد درم حرف میزنیم ولی خب دو تا سال داشتیم از خدمت جنابای کردی یکی این که جایگاه پایگاه اطلاع رسانی محلی چه جایگاهی از نظر سازمان و اینکه شخصا هم تعریفی داشته باشن از اینکه پایگاه تلارسانی محلی چی هستن ممنون میشیم و اینکه یک ادیه ویجی هم ما میخواییم چون روز روز خبرنگار هستش میخواییم که یک ادیه ماندگار از طرف شما انشاءالله در این سازمان برای دوستان عزیز شاید باشیم مرسی به نام خدا که خواستم خبرنگار چهار باهاران روز خبرنگار رو تبریک از می کنم خدمت امه عزیزان صحبت خاصی ندارم تشکر می کنم به نام خدا محمد چادزهی هستم مدیر خبرگزاری شعره اسلامی در سیستان بولکستان. و و باقید حرف خواستی ندارم این روز رو به دوستان عزیزم تبریک ہم چلیں ہم چلیں چھوڑو چھوڑو میں نہیں ہوں میں آفازه باز کنم عوض بالله به نشیطان رجیم بسم الله رحمان الرحیم قسم به قلم و آنچه که می نویستن من نه مد نه مجرد قاطی می کنم بعد اشکال فندی هم دارم بدتر میشه. شه لکنتبان دارم و مجرد دیگه همه امی خنده. امروز ایفته مرداز روز شهادت محمود سارمی خبرنگار ایرنار در کابل که به دست طالبان به صورت ناجوان مردانه به فیل شهادت نایلامه و سالیان است که به بازداشت تلاش جامعه اطلاع رسانی این روز به نام روز خبرنگار مزعین گشته و ساله که برای گرامی داشت این روز جهت بازداشت تلاشگران حساب رسانه مراسم های برگزار میشه. بنده هم از سال افتاد در سازمان منطقه آزاد چابار و در بخش ارتباط پراسان ها در خدمت و همراه عزیزان بوده و هستن امروز بود میخواهم بزنم به معرفی تعدادی از دوستان و خبرنگاران فعال از منظر تنظیم به دل نگیرن دوستان قصد توین و تخریب و کسی ندارن چون جمعه ما یه جمعه سمیمیه اونو در یک یه شوقی و انفسات خاطر تلقیه کنه اول دوستمون های دوست و همراه پیشکستمون جنابای شهری شهریار سروش با بیش از سه دهه کار و تلاش در کنار معلمی به عنوان یک فرنگی همیشه در خدمت رسانه بوده و هنوزم، بزنم به دخته پا برجاز خب سرپاس. ج... همانطور که خودشون گفتم فارغ از جناهای سیاسی چپ و راست کشور همه ماده همه مطبات بوده ولی هنوز فیش حقوقی ایشون با احتساب بازنشستگی آموزش برایرش در کنار روزامه آن لو نرفته. <تصفيق> ولی نیک می دامین که بسیار ناچیز است و به قواهد پول امروزی به, به ستومن هم نرسد. همچنین در خدمت امپرانتور رسانه بلوچستان. جناب کریمی نژاد هست، اینشون از سابقون هست و همیتون می داند. ایکیه دریوزنده. براین هم دارم. <تصفح> از قیان بچه ها و اطلاعات افتگی صدا سیمای اصطان و اکنون خواهران های رسمی ایرنا در چاوار در قدمت هستیم این از این تاکنون دو میلیون و پانسد هزار خبر و گزارش تصویلی در مل... رسانه های مختلف کار کرده اه... که کس را ناجی و صادق سبا و کامران نجف زاده و های محسومی نجاد از روم ایتازی در مقابلش باید زانو بزنن ایشان به دو چیز خیلی علاقه دارن مصاحبه با عروای محسولی چون بعضی موقع اخباری از محسولی این رو خروجی بیره که محسولی میگن روم خبر نداره خب و به آمارسازی، حالت اشکال در کیبورد عوشمندشونه که گاهن در بس پیش میاد که نو صف رضافه اما اگر آمار اگر آمار ریالی باشه از وجه دفاعی ارتش ناتو اعتبارات کشورمون بالاتره. و اگه آمار مساحت باشه از کل مساحت کره زمین و سایر سیارات هم بالاتر برای موفقیت دارم آقای عزیمی دانشجوی امروز ناخدا و کاپیتان کشتی های در کنار رشته تحصیلیشون خیلی علاقوان به همکاری و همراهی در معقولات خبرنه رسانه‌ای است متین کامرن ریلکس از شهر دارالعباده یز جوز و خیز و مو قدرت مانور بالایی داره یه دفعه می‌بینید با کوت شهروار در حال مصاحبه با معاون رئیس جمهور است یوی غیبش می‌داره و در کافه بلوچی لب مرز سوار بر لندکروزی پر از گازو یا سوار موتور در حال تهیه گزارش گذاری برر پر انرژی، جدی، مسائل و مشکلات رو دنبالی کنید، هم درد نکنه؟ جان؟ همین کارت تهدیه رو قرار نیست رو مده جناب نظیر، رسم که همین کار تهدیه خودمون رو جناب نظیر رهبر که واقعا جایشون خالیه رفته زایدان ایشون تصویر بردار خبرنگار، تدوینگر، جروع ویژه، منتاج امروز جاش خالیه به عنوان خبرنگار نمونه تشریف بردن زایدان الان های کردستانی به من زنگ داد تبریک گفته ایشون هم اونجا بود بنا کدار از 20 تا انگشت دست پایشون هنر میچکه خاید تو در واقع آچار فرانسه رسانه‌های خبری جاواره قبلا ما فقط تصویرش رو داشتیم اما به تازگی نش نمی‌خوام فقط بهشون بگید ولوم و صدای دوربین رو از 4 ببرن رو پنج عالی میشه ولی ما شنیدیم برای خبرنگار صدا و شهر قاصیا برای داکا مرکز بنگلادش ازش دعوت کردن چون لحجهش به بنگلادش میخوره، به همکاری شده از جانب کوهزستانی و جانب کردی میخوایم. اه... ایشون رو برای چاوار افض بکنن چون واقعا صدا اه... ج... ما چاوار بدون ندیر صفحه نداره ندیر این ندیر است که چاوار را بی ندیر کرده جناب منصور کریم دادی که خودشون رو معرفی کردن از خبرداری و رسانه مستقل ندای ای. علاقه من به انتشار انعکاس اخبار و مشکلات اوضاع خود بویژه سعی و تلاش ایشون بیشتر رو جلوگیری ادر آب به خور باوکلات و جنگل های عرا. با ایجاد بندهای خاکی در کلانی از این روز است که با خوش شدن جنگل های اررا و مویتوزیست بیاد سراغش چون ایشون متقده به توصیه کشاورزی دیمی است. در بارندگی سال گذشته ایشون به صورت دیمی خیار و اندانوی فصل کاشتند. های دکتر. کل این دوموه استراتیجیک کشور رو ایشون تأمین کرده از تشتیری. های محسن روی هستن از گنارک یا نه؟ نه نه. بخونه ایشون, ایشون هم قبرنان سدا ما و هم راوتومومی فرمانداری کنارک مشغل کاریشون خیلی زیاده گاهی کنارک پاس میداره و زراباد و سودکمب و زاباس. در فضای مجازی فعال و خیلی ازش گله داره که بیشتری نجم انترنتشنشان رو دانلود اکسای دیدار و ملاقات و جلزشات ایشون بدر میراد آخری هم جم... فکر نیستن در جمعه اونای ندیم بالغن آشن باید هستن؟ هستن؟ هم دیروز ما دوتنامهشان رو پرفتاد خیلی از دست ما ناراحت شدن که پسوند آشن رو چرا از اسم من اندازده سبت موافقت کرده بندشون آسمن رو با مشخصات سجلی جدید بالغن آ... آشانده‌ای شنبه هفته آینده دریافت می‌کنم ما هم افته آ... آ... نه یعنی دیکه افته آینده‌ای افته رو آره به رو می‌کنم با بچه سر میشه از نوکاباد از نو... آشمزهی های نوکاباد خواه به تو روزهای عارف آباد در خدمت تمامی دوستان هستیم قرار تنورچه بدنشون و گزارش هایشون دیدید دا دا دا دوستان دیدن یه گزارشگر قعاریه به صورت انزمان به اجرای برنامه به صورت کلک ابراهیم آشمزهی صبح خیر وایدی اصر جدید حسان علی خانهی خندوانه رامبود جوان دورمی رم... دو میران جوانی میفرداده و علی ازدیا و رشید رضا رشید هم جلوی جون با لونگ بیندادن حالا کسی از دوستا... از قلم افتاده حالا <تصفيق> <تصفيق> من چیزم نوشته بودم هنوهای عبدالوها ایران نژاد این نهیم بوده در سر نه اگه کارت ایدیه داره پروشو بده بگیز حالا من در خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم ضمن سلام و احترام خدمت بزرگان بندر یاز احمد افراز عکاس و فیلمبردار روز خبرنگار را رو تبریک میگم و خوشحالم که در این جمع هستم و تشکر ویژه دارم از جناب بزید. آقای دکتر کرپی برامون خدا ضمن سلام و درود و احترام خدمت این جمع هزار گرام محمد کسرا شیرانی هستم در واقع فانوان یک جوان دق, دق من خبرنگار شهروند خبرنگار میدونم خودمو و اکاس خبرنگارم هستم برای خبرگزاری مهر با دوستان همکاری دارم در قرب گروه هنری روجناک در سطح شهرستان فعالیت میکنید جاداره تشکر ویشه ای از آزان منتوازات ملخص شخص جناب دکتر کردی مهندس یوسفی و جناب چاکرزهی داشته باشم که این فرصت و این اعتماد و به جوانه چابار داشتن که یه فرصتی رو فراهم کردن که ما حضور داشته باشیم خودمونو محک بزنیم و به صورت هرفهی تر کارمون دنبال بکنیم مرسی روزت خبرنگارم به دوستان تبریک میگم بسم الله الرحمن الرحیم اول من آیه دکتر یه پاسخی با آیه بدم گفتن که چرا انتقاد میکنید شما ما متقدیم دکتر تو نسل حاضر انتقاد جریانساز هست و در واقع انتقاد تأثیر گذاره بر کارونهای تصمیمگیر و تصمیم ساز خیلی موقع خیلی موقع ما با همین انتقادات های دکتر نه صرفا تو عوضه خبری ما تو عوضه خبری دیگه که همکارمون تعریف کردن با همین انتقادات خیلی راه کشاها باز شده خیلی اتفاقات افتاده جامعه ای که سنتی باشه جامعه که نگاهش نگاه سنتی باشه یه مقدار سخت تغییر میپذیره روی حساب که انتقاد اگر که سازنده باشه یه باریکه ای قاعدتا گذار هست ما خیلی متشکریم اعضای دکتر از, آی از اینکه درک میکنن ما رو از اینکه درک میکنن اطلاع رسانی رو از اینکه درک میکنن مطالبه گری مطالبی گری رو خیلی متشکریم از اینکه خیلی موقع مدیران ارشاد خودشون رو منتظر میذارن برای اینکه پاسخ ما رو بدن تو فضای مجازی فضای عمومی تلفنی و در واقع اینها رو میبینیم و از این موضوع خیلی متشکریم. ولی خب یه درخواست ویژه ای ازشون داریم گزارش های کامل جامع و شفافتری می‌خوایم وای دکتر تو حوزه مالی منطقه از پروژه هایی که اجرا میشه از تزریق هایی که انجام میدید میزان پیشرفت پروژه ها احیانا دلایل انصراف گزاران. نحوه باگذاری زمین ها و شرکت ها اتونان داریم اون راه بردی که دولت مطبوتتون شیخ و شیخ عنوان کردن که در دوره امید و تدبیر برحکس تدبیر و امید مناطقه آزاده در جوای سیاه به جبای شیشه تبدیل شدن این مقاطعا توزه شما اگر اجراد کاملتر بشه و در واقع گزارش های جامعه تر کاملتر و شفاختری درباره باره حوزای مالی منطقه که تمویل میکنه افکار رو به ما کمک میکنه در انتشار گزارش تو حجم‌های بزرگی که تو فضای مجازی تو مثلا کانال هایی درجی 4 و 5 هست علی شما علیه منطقه از هز سازمان ذیل مجموعه تون این گزارش های عمل کردی خیلی میکنه. می کنه مثل خواهشم اون شورای رسانه نش شورای رسانه از پارسال موقعی که شما قرار تشکیل بشه هنوز تقریباً یک سالی هست که هنوز تشکیل نشده اگر قطو اون تشکیل میشد بالاخره این مقدارو بیشتر میتونستیم میگم که خیلی متشکریم از اینکه پاسخ ما رو میدید حتما شفاف سازی به ما کمک میکنه تو انتشار گزارش و گزارش مردم و تمینام داریم هرچند نام بزرگ و بستر ناتوانه است اما شخص جوان و نگاه خیلی مچکرم نقدهایی که دوستا گفتن تقریبا برای ما قابل احترام هستن و اما اصل ترین مسئله که ما شما تمام بچه های در رسانه خبری هستیم کار خبری میکن ازش قافل شدین اون زیر ساخت توسعه هر منطقه من میگم آموزش فروشه که جنسسم آموزش فراشین نعرفو میگم این نقد هایی که امروز بزرگین اتفاق در هفته گذشتهی در چابهار رو در کشور افتاده اعلام نتایج کنکور اما در شهرستان چابهار متاسفر من کل استان رو رسبت کردم کل روستا حتی روستا نکشار و استان روستاو و روستاها روستا آگاه نیکشار خوان همه من به صورت شفافی تمام بذات خودشون کردم به صحنه آوردن اما در چابهار مسائل آموزشی شده به اسناد طبقه بندی دوستایی که در چابهار هستن چرا تو این مسئله اساس ما گذاشتیم در هاشیه دار راه ورود بکنید متوجه ورود بکنید واقعا وحشتناک ما نامارا رو که, که کنترل یعنی در حد در حد لالیگا وحشتناک مثلا ام چی چابار که میلیاردی داره خزینه میشه من خطاب مخاطب فرد خاصی نیست اگر اینجا رو ما باختیم همه چیزو باختیم حرفا که اینجا در ردو و بدل میشه در واقع هیچ ارزش ندارم اول نگاه ما شما نقده های ما شما منصفان مالی این برم آموزشگاه ما خودم آموزشوارم 2 سال هم تقریبا به عنوان کارشفت مسئول مقاطع آموزشی بودم متوجه هستین حساسیت خاصی دارم ولی من دو گفتم من کسالت دارم نه کسالت جسمی داشتم یعنی دچار چار بوران روحی شدم نتاجی که استقراط شده کنارک یه مجاز بسلات نداده اون نو... یکی هست نه اومده خانواده شهیده زرایب خاص خودش داره چابار ما تاران تجربه که وحشتناک وحشتناک اندر وحشتناک ایران شهر که فاجه شده دورستان آتش دست نداره نه اینو باید بگنم چون ما تمام زمان یه دقیقه رو گفتم أرتب... آخور داره از لادی میگن دوستا ما که نقد میکنن بری اینجا اساس به تا اونجا ما شما مشکل داریم این مشکلات طبیعی هست باست سلام <میدور> از تنظیم کارخانه کردن دادن سراوان <تصفيق> یک ساعت و بعد تمام نتایج شد. چه هر سه هفته داره دونبر شداد چه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم و تبریک خدمت همکاران خوب خودم ما البته همکار شما نیستیم اینجا دیگه طرف از شما همکار ما هستید همچنان مثل روزهای اول و اولین جلساتی که خدمت شما بودم اعتقاد و باورم این هست که شما همکاران ما هستید و میتونید یاریگر ما باشید در فرایند توسعه تشکر میکنم از همه شما که با حوصله، با وقت، با مطالعه، با جستجو کمک کردید به ما در این سالها که بر مدار خودمون بمانیم. سه سال قبل جواد ما رو میکشید پایین امروز الگومون گونه شده. ما دست جواده گرفتیم آوردیم بالا در هر صورت آوردیمت بالا دیگه تو ما رو نکشیدی پایین فرهنگ خوبیه کاش بهش بند بمونیم به جایی که دیگران رو میکشیم پایین یعنی ما هیچ کار نکردیم خودت اراده کردیم <tots> در هر صورت آه... یاد بگیریم که فرهنگ قالب کار و زندگیمون همین باشد که دست بگیریم و بالا بکشیم برای در کنار هم بودن نه اینکه پایین بکشیم برای بالاتر بودن واقعیتش همونطور که اول عرایزم گفتم امروز به جهت تقدسی که این روز داره و همیتی که داره سال گذشته به دلیلی که من سفر بودم یکم پس و پیش شد خلاصه یکم ما شرمنده دوستان شدیم ولی در حسب وظیفه و اخلاق و ده که به شما دارم خودم رو موظف و مکلف میدونم که در این روز حداقل کنار هم باشیم چرا که همچنان باورم بر این هست که رسانه و اصحاب رسانه و خصوصا خبرنگار به ما کمک میکنه که مسیر درستمون رو با مراقبت طی کنیم و اگر هم که در جایی ضرورتی نیازی به اصلاح هست حتما بهترین منتقدان خبرنگاران هستند و عزیزان هم در مقاطع نقد کردند، هم محبت داشتن، لطف داشتن در جاهایی که همکاران من زحمتی کشیدند، تلاشی کردند، حتما هم منکس کردند. خاطرم هست که در سال گذشته عرض کردم خدمت عزیزان که در فرایند توسعه یک نقش موثر و مهم و رو اصحاب رسانه دارن اگر که چرخای توسعه روغنکاری مناسبی نشود حتما اون توسعه پایدار نخواهد بود و حتما هزینه اون توسعه بسیار بالاست اطلاع رسانی شفاف و به موقع خیلی میتواند به جریان سازی در فراینت های توصیح کمک بکند. تجربه کردیم شاید سالهای گذشته بر امیدها و بر حرفها و بر از آینده صحبت میکردیم. تا امروز که توفیق پیدا کردیم بر حال بعد از سال و اندی خدمت شما عزیزان هستیم. حتما از داشتههایی صحبت می که بخشش رو نوید داده بودیم قول داده بودیم بخشش فراتر از قولهای ما بوده و حتما هم مواردی هست که قول دادیم و نتوانستیم، نتوانستن هم اگر آگاهانه باشد حتما ایرادی ندارد برحال انسانیم و با توانایی که خداوند داده و خداوند به اندازه توانایی سوال می کند. بندگان خدا هم نمیدانیم بر چی اساسی سآل میکنم قصد گزارش دادن و در واقع پرسش و پاسخ و پاسخوی به سوالات امروز اصلا نبوده میخواهم هم که نباشد اگر اجازه بدید این دفعه دیگه قولش رو از آقای یوسفی نمیگیریم آقای عظمی رو میذاری مسئول که همیشه یادآوری میکنه من یادم میره آقای یوسفی نمیدونم به هر دلیلی شاید وقتها ها و گرفتارریال من اجازه نمیده نمیتونه تنظیم بکنه ولی آقای عظزیمی ساعت دو صبح سه صبح به وقت منو پیدا میکنه خو احوال ما رو میپرسه. بنابراین مسئولیت رو بدیم بهشون آقای عظیم برنامه ریزی بکنه برای هفته دولت اگر موافق باشید. اون مشروع و دقیق و شفاف و روشنی که می خواهید رو هفته دولت که نزدیکم هست هستی زمانی نمونده انشاءالله خدمت شما عزیزان با عدد و رقم مستند بشه اما چندتا تا نکته مهم رو که شاید دقدقه دوستان بود مخصوصا آقای بارکسی حالا ربطه با روحی خیر غیر خبرنگاری معتوف به گردشگریشون مشفقانه گفتن و دلسوزانه برحال موضوع و فضاهایی هست که امروز متاسفانه در حالا حال همه جا هست اینجا بیشتر شاید دلیلش اینه که سرعت قطار ما خیلی زیاد شده و هم صدای قطار و هم سرعتش بعضی دوستان رو آزار میده و طبیعی هست که خب برحال عکس العمل نشون بدن نسبت به این موضوعات اما آنچه که قول داده بودیم و برش استوار ماندیم شفافیت بود در سیستم ما به جرعت میتونم بگم هیچ وقت سازمان منطقه آزاد چابهار اینقدر شفاف نبود و اگر هم موفقیتی در مجموعه که اعتقاد دارم همکاران ما موفق بودند در بسیاری از ماموریت‌های خودشون به شواب به شهادت آمار و ارقام و آن که بر روی زمین وجود دارد نه بر روی کاغذ همکاران ما تلاش زیادی کردند و موفقیت‌های نسبی هم کسب کردند اگرچه که همه ما تیم ما باور و اعتقادمون بر این هست که راه‌های رفتنی بسیاری هنوز در پیش داریم از نرفته ها صحبت نمی‌کنم از آنچه که باید برویم راه های رفتنی بسیاری در پیش داریم و همه باید تلاش بکنیم و این راه ها رو با سرعت بیشتری انشاء الله بکنیم که برحال به موفقیت برسیم و آن چیزی را که شایسته این مردم هست آن چیزی را که شعن و منزلت نظام و مقدس جمهوری اسلامی هست رو با هم دیگر هر کسی به سهم خودش و به مأموریت و مسئولیت خودش محقق بکنم اصحاب رسانه نقششون بسیار بسیار مهم هست اگر که در انعکاس عرض کردم صحیح شفاف و به موقع در زمان خودش حضور مناسب و واقعی خودشون رو داشته باشن حتما اتفاقاتی که در جامعه خواهد افتاد برایندش به نفع جامعه است. در مسیر توسعه است در, در مسیر منافع ملی هست در این چند سال هم تجربه کردیم همه عزیزان چه آنهایی که نقد کردن و انصافا ارز کنم از بسیاری من چند روز قبلی که دوستان از من سآل می کرد که چرا نسبت به این موضوعات عمل نمی میگفتم من از اینها بهترین عکسالعملو به اینها نشون میدم من به دقت همه اینها رو میبینم بررسی میکنم حتما ایراداتی در کارهای ما هم پیش میاد وجود دارد و مسیر و مداری که حرکت میکنیم اصلاح است اما اینکه اینها بر حالال آنگوونه که نقل می کنند البته با اهداف خاص که همه شما ها میدانید، اگر آنگوونه بود که دستگاه های نظارتی که بر حال بیکار که نیستند بر حال تلاش هم می کنند وزیفه شون رو به درستی هم میدانند به درستی هم عمل می کنند. حتما بر حال گزارش دستگاه های نظارتی برای ما ملاک عمل هست که، همچنان ارتباط بسیار خوب و مستمری رو داریم استفاده میکنیم از پیشنهاداتشون و حتما اگر هم ایرانی در سیستم باشه رسیدگی خواهد شد و خوشحالم که ارج بکنم خدمت شما در این سالها و وظیفه خودم میدونم به دلیلی که تلاش همکاران من بوده باید عرض بکنم در سازمان منطقه آزاد چابهاری که از سال نود تا 96 شیش تا نود و پنج ببخشید مجموعه کارهای عمرانی اون فقط آنچه که موجود ما صورت برداری کردیم و به همون تحبیر شده 67 میلیارد تومن بوده امروز که من خدمت شما دارم صحبت میکنم منهای اون کارهایی که نیمه تمام بودن و تمام کردیم قراردادهایی که الان جاری هست در سازمان الان که خدمت شما هستم 136 میلیارد تومن هست یعنی برای سال 96 و 97 با و 163 میلیارد تومان هم در مناقصه داریم یعنی قریب به 300 میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه اقتصاد و عملکرد در اون سازمانی بودجه سال 90 و پنج سازمان محقق شده 120 ملیار تومن بوده سال 97 محقق شده 570 ملیار تومن بوده و سال 98 790 ملیار تومن همین جمله رو که فقط شما کار بکنید از فردا لطفا فیدبک های فضای مجازیشم به من بدید که میگنین پولا رو حالا بیار بده کجا بردی سرمه گذاری کردی در حوزه اقتصادی هم خوشبختانه اکثر عزیزان مدت طولانی هست که در چابهارن حتما شهرک سنتی منطقه آزاد قبل سال 94 رو در ذهنشون دارن اگر در ذهنشون نداشتید یه سری تصاویر موجوده در گوگل ای چیزی اینا درست کردن مستند سازی میکنه اکس میگیره نگه میداره بهش میگن گوگل مپ آیه گوگل ماب میگن یه چیز دیگه میگن بله ها رو سیف میکنه از لوکیشن های مختلف و شما در مقاطع مختلف میتونید برید این ها رو ببینید و نشون میده اونجا دیگه نه عدد رقمه نه کردیه که بگه نه کسی دیگری هست عکس سال 94 رو مقایسه کنید با عکس سال حالا آخریش من فکر میکنم اخیراً دوستان نگرفتند 96 گرفتیم درسته یا 97 اوایل 97 گرفتیم آخرین عکس هم چک کنید ببینید مالکی هست اونم اضافه کنید اون خودش خواهد گفت که در حوزه یه تولید که روز اول عرض کردیم استراتژی ما تغییر مسیر از تجارت به تولید هست چه اقداماتی انجام شده هر آنچه که اونجا ملاحظه میفرمایید حاصله در واقع اقدامات حوزه سرمایه‌گذاری ما است در سازمان. بنابراین حوزه عمران با عدد و رقم و با قرارداد صحبت کردم خدمت شما. 67 میلیارد تومن 6 سال رسیده به 130 میلیارد تومن امروز به علاوه 160 میلیارد تومانه تا پایان سال یعنی 300 میلیارد تومن فکر می‌کنم برای دوره بهار 3 ساله ای و با توجه به تجربه سازمان های مشابه با این روند رشد بودجه و کار عمرانی قابل دفاع باشد نمی قابل قبول باشد حتما باید تلاش بیشتری بکنیم چون فاصله تا استاندارد ها و واقعیت ها و نیازمندی خیلی بیشتر هست. در حوزه اقتصاد هم خدمتون ارز کردم تولیدات ما از سال 92 تا 96 بیش از 20 برابر رشد کرده 97 سال سختی بوده در حوزه تولید امیدواریم که در سال 98 بتونیم جبران 97 رو بکنیم اما اتفاقاتی که در عرصه بین الملل افتاد بسیاری از قراردادها بسیاری از فعالیتها و تولیدات منطقه رو تحت تاثیر قرار داد این عمومی برای کل کشور بود اما در حوزه مهمی که باز هم اعتقادم بر اینه که در این حوزه هم سازمان منطقه آزاد چابهار در این سالها پیشرو بوده مسئولیت اجتماعی است باورمون این هست که برند ما و اتیکت ما امروز مسئولیت اجتماعی است سازمانی هستیم که خودمان را مکلفه به عمل و پاسخگویی در قبال جامعه محلی می دانیم هشتاد و سه کلاس درس سینزده مدرسه فقط برای امسال مجتمع آموزشی کامل البته مشارکتی در بخش دشتیاری که پایینترین ترین شاخصهای آموزشی سرانه های آموزشی رو در کشور داره این یعنی عمل به مسئولیت اجتماعی حوزه بهداشت نمیدانم دانم تایید می کنید ولی تصویر و تصور و باور خودم بر این هست که در حوزه سوزندوزی و سنایه دست، سنای دستی به صورت عام و سوزندوزی تحولی ایجاد کردیم حتماً زحمت و تلاش سوزندوزان ما و فعالین این حوزه نقش مهمی داشته اما حمایت تمام و کمال سازمان از این صنعت باعث شده که امروز در مراسم هایی که هیچ بهانه هیچ دلیلی هیچ ارتباطی با استان ما به فرهنگ ما و به مردمان ما ندارد لباس و تره زیبای سوزندوزی حضور دارد اینها کارهای سنگین و زمانبری بوده روزهایی همین دوستان و خیلی از عزیزان اعتراض می به ما که چرا فقط سوزندوزی مقاومت کردن همکاران ما خودم اصرار به ماندن بر این مدار داشتیم و امروز خوشحالم که دیگر همه عزیزان در تلاشن و رقابت میکنن که در این مسیر از دیگری سبقت بگیرن ما به وظیفه خودمان عمل کردیم و نماشگاه جاجشواره مدل باس پارسال به نظر من یک تکملهی ای به این موضوع بود و خوشبختانه در مسیر و مداری که قرار بوده حرکت بکنه و این جریان قرار بگیره قرار گرفته امروز سوزندوزان ما صنعتگران ما دیگر برای معرفی خودشون مسئله ندارن. آنچه که هدف گذاری کردیم باز تلاش برای ارتقای کیفیت، تلاش برای تنوع محصول و توسعه بازار هست این رو هم انشاءالله تا روزی که بر حال فرصتی هست حتما تلاش خواهیم کرد در کنارشون خواهیم بود. چرا که باورمون برین هست توان منسازی از خانواده شروع می شود؟ و هیچ کس از ما، و مادر و خواهری در خانواده های این استان نداریم سراغ نداریم که قبل از خواندن رو نوشتن نخصوزن را نشناسد این بهترین نوع توان منسازی هست که با مطالعه، و با برنامه به سراغش رفتیم و خدا رو شاکرم که توفیق داده نتیجه خوب هم بگیریم حتما هم همه شما می توانید کمک کنید که این مسیر رو بهتر ادامه بدید بیشتر از این نمیخوام راجع به عملکرد صحبت بکنم سه تا محور اصلی رو ما به عنوان در اون راهبردهای ای که همیشه گفتیم و مشروع عملکردمون رو حتما در هفته دولت در اون، آ راهبردهای پنجگانه خدمت شما ارائه خواهم کرد با جزیات. من تا امروز سه محور اصلی رو که بر حال شاید روزها حرف و حدیث هم در موردش زیاد هست خواستم عرض بکنم حوزه عمران حوزه گذاری و اقتصاد و حوزه مسئولیت اجتماعی این سه شاخه و سه رکن اصلی فعالیت‌های ما در و برایند برآیند فعالیت‌های ما در منطقه بودن امیدوارم که انشالله با این روحیه و انرژی که در این سالها در کنار ما بودید در ادامه راه هم در کنار هم باشیم نقد کنید حتما خواهش میکنم نقد بکنید اما نقد بکنید مرز بین نقد و غیر نقد خیلی خیلی مرز باریک و زریفیست تشکر میکنم از همه دوستان همه هایی که حمایت کردن همه هایی که گزارش های مثبت ارائه کردن و همه اون دوستانی که نقد کردن واقعا آقای کیخا لبخند میزنه وقتی من میگم نقد کنه آقای کیخا شما جز همراهان اصلی ما بودید انصافا این موضوع رو ارز میکنم باورم بوده همیشه به دوستان گفتم و نقد کردن برای من بسیار خوشایند. هر از چی میگید به شایه از, از غیر نقد کردن است. هستم همه رو شامل بکنیم چرا که همیشه و تمام وقت من سعی کردم انتقادات رو با دقت و با, با حوصله و با فکر کردم بخونم و خیلی چیزها مختم در این سالها و اصلاح کردم تایید میکنم اصلاح کردیم در بسیاری از موارد از نقد هایی که دوستان با هر نیتی خیلی و مشفقانه و دوستانه و دلسوزانه بوده واقعا عمدتن چه جایی هم بالاخره شهرت های آقای جواد صادقی و دوستانشون میکنن دیگه اونجا ها رو هم مال به حال استفاده کردیم و ا... همچنان بر همان باور و اعتقادم میخوام با این جمله تموم کنم که شما رو همکاران خودم هم میدانم و تقاضا دارم از همه شما که همچنان همکار و دوست بمانیم با حفظ تمام اصول و ارزش های بعد فقط همین جمله آخر رو میگم. همچنان بابر و اعتقادم بر این هست که همکار هستیم و تقاضام از همه شما عزیزان این هست که بر همین مدار همکاری بمانیم با رعایت همه ها و اصول حرفه‌ای و جریانی خودمون. یادمون باشه که چابهار نقطه مشترک همه جریان‌های سیاسی است به دلیل اینکه چابهار متعلق به هیچ جریان سیاسی گروه و حزب خاصی نیست چابهار امروز مهمترین ظرفیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ جدید اقتصادی است که ناجوان مردانه علیه کشور راه افتاده و هیچ کس حق ندارد که چابهار را مسادره جریان و مسیر خاصی بکنند به دلیلی که این ظرفیت ملی فقط و فقط با انایت ویژه‌ای که مقام معظم رهبری دارد حتما باید در اختیار و در خدمت عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد افتخار میکنیم که خداوند به ما توفیق داده در این برهی حساس تاریخی در کنار شما عزیزان و خدمت گذاره مردم عزیز سیستان و بلوچستان، ایران و نظام و مقدس جمهوری اسلامی باشیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم گذارم از همه شما. آقای عزیمی، مسئولیت ماندن ما بر وعده هفته دولت با است به هر دلیلی اگر من حضور پیدا نکردم، دوستان یقه آقای, آقای عزیمی رو بگیری. به برکت سلواتی بر محمد و آل محمد. سلال آقای محمد و آل محمد. تشکر از... شما به دلیل وقتی که گذاشتین و همکاران خودم که روز پنجشنبه صبح زود رو اختصاص دادن به ما من فقط بله ایشون یه رو به هشت دفتر بودن 7 <تصفيق> <تصفيق> در خصوص شورای رسانه من فقط عنوان بکنم با با عظیمی صحبت کردن این ای قسمت مسئولیتشون با خودشون خود بود قرار بود ای بنویسن به من بدن البته من قبول دارم بسرائی بسرائی بسرائی بسرائی. اون رو من مسئولیتش رو قبول میکنم ولی خبر خوبی که و یه موضوع دیگه ای که میخواستم خدمتون بگم بحث دفتر خبر جنوب استان هستش اون ظرفیتی که میخوایم دوره هم جمع بشیم اونجا برقرار میشه یه صحبتهایی رو انجام داریم یه فضایی اختصاص دادیم داره آماده میشه به دستورهای دکتر کردی بهترین لوکیشن چابه هار اختصاص داده شده به این دفتر خبر روب آقیانوس و انشالله دوره هم جمع بشین و بتونیم در کنار هم دیگه در رسای اطلاع رسانی و دادن اطلاعات درست گام برداریم موضوع دیگه بعد از جلسه خدمت جوم خواهیم بود در خصوص جشنواره مونسون سری صحبت هایی رو داریم مثل جزئیاتی رو خدمتتون میگم فقط قبل از اون در خدمات دکتر بگم یه فراخانی رو تنظیم کردیم که آثار برگزیده خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار هر کسی هر اثری تو حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، و اجتماعی، راجب چابهار و پتانسیل‌هاش داشته باشه در اون اختتامیه از سه اثر برگزیده تجلیل خواهد شد. بنده. بنده. برسال میکنید روابطتون می. خب، آیت صادقی دیگه ما تلکی چیزی نداریم ما صندلی بده کن خب ما جهت تقدیر از عزیزان لوح تقدیر رو به جهت یاد بگیم شخص بولوی هم جناب سروش اصداد عزیز شما بگیم ماماده بشین پسته جوابی کریم می کریم دادی جان بارکزه جواب برمد تغییر در لای شده شما بشه نه ايبرهو فدای رو شد. چوبر اي سي. بذار دفعه بعد با هم دستمون فصل مفصل بزنیم خدیر جیب خدا. چا هستش. میاندوز. جام شفیقی ما لآقای زیرم رو بدیم به آقای نه قرار شد از هاشمزهی زیر بدید جواب هر نیست رو بدید جواب جام که خواه جام شداد زهی یه عکس یادگاریشون رو بگیرن تو باید از ما انتقاد کنه ما بیشتر تحویلش بگیریم بیمکسیمشن شما هستم تو انتقاد عظیمی آقای عظیمی آقای عظیمی که انتقاد یه نفر اغلاس اونجاس شیرانی شاسیاس سلام اسلام خوب تدوینگرک چلوه اجم هم هم این کلیپ ها رو یه شو تدویل میکنه آقای وحید آی وحید وحید وحید جواد این همیل آخری رو میریم پیشش جواد اکبر هم آخر میریم سراغش خودت این خبر ها و اینا رو خود آیه عریش میخونیم خبر هایی که میزنم قرآن و شواهی عریش میخونیم آیه اکبر علی صادقی اکبر نمیخونیم اکبر نمیخونیم اکس خبر نگاره دیگه اکس خبری جواد رو میریم پیشش جواد نکنیم جواده میتونیم بیاری؟ نه نه بابا نه نمیاد کارشو کنه... من برمیدارم آنفه بماییت هم؟ هم؟ هر که نتونی بیارد اینجا کارشو من میبرم چند نفر از عزیزان حضور ندارن بچه های کنارک آی سروش بچه های کنارک چارپن نفر دعوت کردیم نیومدن جواده بیاریم بله بله بله میا با بشتر دست جمعی هسته یک عکس ما دکتر پیتر شما مگیره